شاهزاده و اجده ها در روزگارای قدیم امپراتوری زندگی می‌کرد که سه پسر داشت. هر سه اونها جوانای قد و خوش‌سیما و عاشق شکار بودند. روزی نبود که اونها به شکارگاه سر نزنند. صبح یکی از روزها بزرگترین پسر پادشاه سوار بر اسبش شد و به سمت یکی از جنگل‌های نزدیک به راه افتاد. جایی که حیوانات وحشی زیادی اونجا زندگی می‌کردند. شاهزاده هنوز از قصد زیاد فاصله نگرفته بود که خرگوشی از بین بوته‌ها بیرون پرید و به سمت جاده روبروی جنگل رفت. شاهزاده جوان به سرعت به دنبال خرگوش دوید و بعد از تغییب خرگوش از بین تپا و در سرانجام، حیوان به آسیابی که کنار یک رودخونه بود پناه برد. شاه خرگوش رو تا دم در آسیاب دنبال کرده بود. اما وقتی مقابل در ورودی آسیاب رسید، بسیار وحشت کرده بود. چون به جای خرگوش یه اجده دم در آسیاب ایستاده بود. از دهن اون اجده ها آتیش و دود بیرون میومد. شاهزاده به محض مشاهده ی این صحنه ترساند، ترسان که خودش از این مخمسه نجات بده. اما زبون آتشین اجده ها مثل کمندی دور کمر شاهزاده پیچید. تو یه چشم به هم زدن شاهزاده تو دهن اجده ها جای گرفته بود و دیگه اثری ازش نبود. یه هفته سپری شد. اهوری شهر بعد از اطلاع پیدا کردن از اینکه شاهزاده هنوز برنگشته خیلی نگران شده بودند. به برادر دوم شاهزاده از امپراتور تقاضا کرد که به شکار بره تا بتونه حداقل نشونه ای از برادر گم به دست بیاره. امپراتور به پسر دومش اجازه داد که به شکار بره. اما تا شاهزاده دوم هم از دروازه شهر بیرون رفت دوباره همون خرگوش از بین بوته بیرون پرید و شاهزاده شکارچی رو بین تپه ها و در راه به دنبال خودش کشون. سرانجام هم هر دوتاشون تاشون رسیدم به در همون آسیاب. خرگوش داخل آسیاب پناه برد و شاهزاده هم در کمال ناباوری اجده رو در برابر خودش دید که از دهنش دود و آتش بیرون می اینبار این بار هم زبون آتشین اژدها دور کمر شاهزاده پیچید و توی چشم به هم زدن به وسیله اژدها بلعیده شد. روزها همین جور سپری میشد. امپراتور بی صبرانه در انتظار برگشتن فرزندش بود. اما اونها برنگشتند. و امپراتور هم با تعجب از اینکه پسرش کجا ممکنه رفته باشند و چه بلایی سرشون اومده باشه، روزها و شبها آروم و قرار نداشت. نمیتونست چشم چشموی هم بذاره. وقتی پسر تر از امپراتور تقاضا کرد تا به اون هم اجازه بده که به جستجوی برادرانش بره، امپراتور از ترس اینکه مبادا این یکی هم بره و به سرنوشت اون دوتای دیگه دوچار بشه، با تقاضای اون مخالفت کرد. اما ساده بعد از اصرار فراوون و قول دادن به امپراتور که خیلی احتیاط میکنه و مراقب خودش هم هست، تونست موافقت اون رو جلب کنه. امپراتور دستور داد بهترین اسبش رو برای پسر کوچیکترش زین کنن. شاهزاده جوون با دلی پر از امید سفر خودش رو شروع کرد. اما هنوز از شهر انقدر فاصله نگرفته بود که خرگوشی از بین بوتها ها بیرون پرید و پیش پاگ شاهزاده دوید. توی این تعقیب و گریز سرانجام دوباره به مقابل همون آسیاب رسیدن. مثل دفعه قبل خرگوش دوباره رفت توی آسیاب. اما این بار شاهزاده خرگوش رو تا دم در آسیاب تعقیب نکرد. آقلانه تر از دو تا برادر دیگش عمل کرد و با خودش گفت توی جنگل های مثل این زیادن بعد از شکار کردن چندتایی از اونها میتونم بعدا به سراغ این یکی بیام خلاصه شاهزاده ساعتها تو همون حوالی به دنبال خرگوش گشت اما هیچی پیدا نکرد و بالاخره خسته از انتظار بیهوده و جستجوی بیحاصل دوباره به سمت آسیاب برگشت وقتی دم در آسیاب رسید، پیرزنی رو دید که با خوشرویی به اون سلام کرد. شاهزاده گفت: صبح بخیر مادر. پیرزن جواب داد: صبح بخیر فرزندم. شاهزاده دوباره پرسید: مادرجان جان، من چجوری میتونم اینجا خرگوشم رو پیدا کنم؟ پیرزن جواب داد: اون خرگوشی که تو دنبالش میگردی در واقع اژدهاست که مردای جوون زیادی رو فریب داده و اونها رو خورده. ساده به محض شنیدن این حرفها ها قلبش سنگینی میکرد. با فریاد گفت پس اگه اینجوری باشه برادرای منم اینجان و توسط این اجده خورده شدن. پیرزن جواب داد درست حد زدی. حالا اگه میخوای تو هم به سرنوشت برادرات دوچار نشی بهتر از همین راهی که اومدی فوری برگردی. علی شحصاده گفت تو نمیخوای برای خلاص شدن از این جای ترسناک همراه من بیای؟ من زندونی این اجده ها هستم نمیتونم خودم از دست زنجیرای اون خلاص کنم شاهزاده با صدای بلند گفت حالا به حرفهام خوب گوش کن وقتی اژدها برم برمیگرده ازش بپرس که وقتی که از اینجا میره به کجا میره چه چیزی باعث میشه که اون انقدر قدرت و نیرو داشته باشه وقتی با کمی چرب زبونی اون رو فریب دادی و رازش رو فهمیدی دفعه بعد که به اینجا برمیگردم همه اونها رو به من بگو بلاخره شاهزاده به قصد برگشت و پیرزن توی آسیا باقی موند وقتی اجده برگشت پیرزن بلا فاصله پرسید این های مدت کجا بودی؟ حتما جای خیلی دوری رفته بودی؟ اجده جواب داد بله مادر جای بسیار دوری بودم اون وقت پیرزن اونقدر از زندگی اجدها تعریف و تمجید کرد که اجدها خیلی خوشحال شد. و همین لحظه بود که پیرزن فرصت رو مناسب دید و پرسید بعضی وقتها از خودم میپرسم که تو این همه قدرت رو از کجا به دست آوردی؟ بارها خواستم این رو بدونم. منبع نیروی تو هر جا که باشه عاشقانه زانو میزنم و اونجا رو بوسه میزنم. اجدها از شنیدن این حرف خنداش گرفت و گفت، راز قدرت من تو سنگ اون اجاقه. وقت پیرزن از جای خودش بلند شد و به طرف سنگ اجاق رفت و اون رو بوسید. اجداه از دیدن این صحنه قهقه بلند سر داد و گفت عجب آدم احمقی هستی. من شوخی کردم. راز قدرت من تو اون سنگ نیست. بلکه بالای اون درخت بلنده. اون وقت پیرزن به طرف درخت بلند کنار آسیاب دوید و دستهاشو دور تنه اون حلقه زد و با تمام وجود تنه درخت رو بوسید اجدهها بار دیگه از دیدن این صحنه خندهی بلندی سر داد و گفت آهای پیره نادون تو فکر میکنی یه درخت میتونه اینقدر به من قدرت بده خلاصه با اینکه پیرزن از دست شوخیای بیمزهٔ اجدهها دلخور شده بود اما خونسردی خودش رو حفظ کرده ازش پرسید پس منبع قدرت تو کجاست؟ اجده ها جواب داد. قدرت من اون دور, دور است. جایی که هیچ کس نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. جای خیلی دور. سرزمینی که در کنار پایتخت اون یه دریاچه قرار داره. تو اون دریاچه یه اجده ها زندگی میکنه و تو دل اون اجده ها یه گراز وحشی. تو دل اون گراز وحشی هم یه کبوتر و تو دل اون کبوترم یه گنجشک. قدرت من تو دل اون گنجشکه. وقتی پیرزن این حرفا رو شنید، با خودش فکر کرد که نباید بیشتر از این چاپلوسی اجده رو بکنه. چون اون هرگز نمیتونه قدرتش رو تصاحب کنه. صبح روز بعد، زمانی که اژدها آسیاب رو ترک کرد، شاهزاده هم خودش رو به اونجا رسوند. پیرزن تموم حرفهایی رو که اجدها بهش گفته بود رو برای شاهزاده تعریف کرد. شاهزاده هم با دقت تمام به حرفهای پیرزن گوش کرد. بعدم به قصر برگشت. شاهزاده لباس چوبپانی به کرد و یه چوب دستیم به دستش گرفت و برای پیدا کردن محلی که اونجا بتونه چوبپانی و گردیداری کنه، قصر رو ترک کرد. شاهزاده بعد از پشت سرگذاشتن گذاشتن روستاها و شهرهای مختلف سرانجام توی قلمروی دوردست وارد شهر بزرگی شد که از سه طرف توسط دریاچه احاطه شده بود شاهزاده با خودش حدس زد که این شهر باید همون شهری باشه که توش زندگی می‌کرده خلاصه، شاهزاده هر کسی رو که سر راه خودش می‌دید و احساس می‌کرد که ممکنه به یه چوپان احتیاج داشته باشه ازش تقاظای کار میکرد. اما اون شهر هیچ از به چوپان نیاز نداشت. کم کم دیگه داشت ناامید میشد. که یه مردی وقتی متوجه شد که اون دنبال کار میگرده به طرفش رفت و گفت آهای جوان بهتره پیش امپراتور بری. شنیدم اون برای مراقبت از گله دنبال یه چوپان میگرده. وقتی شاهزاده به خدمت امپراتور رسید و پیش پای اون زانو زد، امپراتور رو کرد بهش و گفت آیا مسئولیت مراقبت از گلده های رو قبول می شاهزاده گفت علا حضرت با کمال میل این کار قبول می‌کنم، باعث افتخار منه امپراتور وظایفش رو بهش گوش سد کرد و در ادامه حرفاش به اون گفت بیرون از دیوارای این شهر دریاچه بزرگی وجود داره که تو سواهر اون بهترین الفزارهای قلم من قرار دارن وقتی گله های رو به مرتم بری، همه که یک راست به طرف اون عرفزارهای سرسبز میرن. اما تا به حال، هیچ کدوم از گوسفندام بعد از رفتن به اونجا بر بنابراین، بهتر گله های رو جایی ببری که خودت سلاح میدونی. ولی به اونها اجازه نده که هر کجا خواستن برن. شاهزاده بعد از شنیدن حرفای امپراتور در برابرش تعظیم کرد و، به اون قول داد که به بهترین شکل از گله مراقبت کنه بعدشم قصد رو به سمت بازار شهر ترک کرد تا برای خودش دوتا قلاده سگ گله و یه اقاب و چند تا نیلوک بخره بعد از انجام این کارها شاهزاده گله رو به مرتب برد گوسفندا به محض دیدن دریاچه با تمام توانی که تو پاهاشون داشتن به سمت مراته سرسبز ساحل دریاچه دویدن شاهزاده مانع رفتن اونها به اون سمت نشد به جاش اقابش رو روی شاخه درختی گذاشت و نیلوکهاش هم روی چمن گذاشت به سرکاش هم دستور داد از سر جای خودشون حرکت نکنن اون وقت شاهزاده آسین های پیراهنش رو و پاچه های شلوارش رو بالا زد و وارد آب دریاچه شد وقتی وارد آب دریاچه شد فریاد زد آهای اجده اگه نمیترسی خودت خودت روی من نشون بده تا با هم بجنگیم ناگهان از احماق آب صدایی جواب داد آهای شاهزاده من آماده مبارزه با تو هم. و تو همون لحظه اجدها از آب خارج شد جستگی عظیم و حیبتی ترسناک داشت شاهزاده به سمت اون حمله کرد و با هم توی آب تا نیمه های زور جنگیدن اجده نفس نفس میگفت می گفت آهای شاهزاده اجازه بده سر آتشین خودم رو یک بار به زیر آب ببرم اون وقت خواهی دید که من میتونم با زربه ای تو رو به هوا پرتاب کنم شهست جواب داد آهای اجده ها اینقدر به خودت مغرور نباش اگه دختر امپراتور اینجا بود و پیشونی من رو میبوسید، اون وقت من میتونستم تو رو تا نزدیکترین ستارها پرتاب کنم همون موقع نیروهای بازوی اجدها سست شدند و شاهزاده رو رها کردند و بعد هم اژدها به پشت توی آب افتاد نزدیکی های غروب بود که شاهزاده آثار و علائم نبرد خودش با اژدها رو از سر و روش پاک کرد و اقابش رو از روی شاخه درخت برداشت هاش را هم زیر بغلش زد و همراه سگهای گله و گوسفنداش به سمت شهر بهراه افتادند وقتی که اونها از خیابونای شهر می مردم بردم شگف زده بودن. چون تا به اون روز هیچ گله ای از کنار ساحل برنگشته بود. صبح روز بعد، شاهساده قبل از طولوی خورشید از خواب بیدار شد. گله های رو به سمت ساحل دریاچه هدایت کرد. این بار امپراتور دوتا سوارکار رو هم همراه چوپان فرستاد تا از دور مراقبشون باشن. سوارکارا حتی یه لحظه هم از چوپان و گلده گوسفندا چشم بر و در و درزم مراقب بودن که چوپان متوجه اونها نشه. وقتی اونها گلده گوسفندا رو دیدن که به سمت ساحل میرن بلا فاصله خودشون رو پشت تپهی مخفی کردند. چوپان هم مثل دفعه قبل نیل کاش رو روی چمن گذاشت و عقابش رو روی شاخه درخت گذاشت و به سرکاش دستور داد که از جای خودشون حرکت نکنن. مثل دفعه قبل آسین های پیراهنش پاچه های شلوارش رو هم بالا زد و داخل آب شد و فریاد زد آهای اجده اگه نمی ترسی خودت رو نشون بده تا با هم بجنگیم. و اژدها هم مثل دفعه قبل جواب داد من آماده مبارزه با تو هستم و تو همون لحظه اجده از آب بیرون اومد. این بار هم اونها مثل دفعه قبل با هم گلاویس شدن نبرد اونها تا نیمه های زور تور کشید درست خورشید بالای آسمون بود که اژدها نفس نفس زنان گفت شاه شاهزاده اجازه بده سر آتشین خودم رو یک بار به زیر آب ببرم و اون وقت خواهی دید که با ضربه ای که به تو میزنم تو رو به هوا پرتاب شاه شاهزاده هم جواب داد آهای اجده به خودت مغرور نشو اگه دختر امپراتور اینجا بود و پیشونی منو میبوسید، اون وقت من میتونستم تو رو تا نزدیک ستاره ها پرتاب کنم و دوباره مثل دفعه قبل نیروی بازوهای اژدها سست شد و شاهزاده رو رها کرد و بعدش هم اژدها به پشت توی آب افتاد نزدیکی های غروب بود که شاهزاده دوباره گله گوسفندای خودش رو جمع کرد و نیلبک زنان به سمت شهر راه خودش رو در پیش گرفت. وقتی از دروازه شهر عبور می کرد، همه اهالی شهر از خونه بیرون اومده بودند و با چشمانی حیرت زده به چوپان زده بودند. چون تا به اون روز هیچ گلهی از کنار ساحل برنگشته بود. اما سوارکاره امپراتور زودتر از خود چوپان به قصد برگشته بودند و اون چرا که دیدن برای امپراتور تعریف کرده بودند. امپراتور با شور و شوق فراوون به حرفهای اونها گوش می‌داد، بعد هم دخترش رو صدا کرد و همه چیز رو برای اون تعریف کرد. بعد از اینکه امپراتور همه ماجرا رو برای دخترش تعریف کرد، به اون گفت: "فردا تو هم همراه چوپان به دریاچه میری و اون وقت همون طور که چوپان آرزوش رو داره، پیشونی اون رو می بوسی. اما وقتی دختر امپراتور این حرف رو شنید، با گریه گفت: یعنی تو واقعا میخوای تنها بچت رو به اون محل ترسناک بفرستی که امکان برگشتی هم تو کار نیست؟ پادشاه گفت: نترس دخترم، همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. قبل از اینها چوپانای زیادی به اون دریاچه رفته بودن و هرگز هم بر نگشتن اما این چوپان توی این روز دو بار با اژدها جنگیده و بدون اینکه کوچکترین خراشی برداره برگشته. بنابراین من امیدوارم که فردا اون اژدها رو بکشه و این قسمت از سرزمین ما رو هم از دست این حیولای خونخوار آزاد کنه. خورشید تازه از پشت کوها بیرون اومده بود که شاهزاده خانم پیش چوپان اومد و آماده ی رفتن به کنار دریاچه شدند. چوپان از شادی تو پوست خودش نمی‌گنجید. اما شاهزاده خانم زار زار گریه میکرد. چوپان بهش گفت اشکاتو پاک کن فقط کافیه که کاری که از تو میخوام رو انجام بدی وقتش که شد از تو میخوام بیای و پیشونی منو رو ببوسی همین و بس چوپان با شادی در حالی که نیدبک خودش رو می نباخت جلوتر از گله به راه افتاد و به سمت دریا چه رفت فقط گاهی میایستاد و به خانم که هنوز در حال گریه کردن بود نگاه می کرد و می گفت انقدر گریه نکن به من اعتماد داشته باش از چیزی نترس خلاصه سرانجام همهشون به کنار دریاچه رسیدن گوزفندا سراسر مرتع پراکنده شدند و شاهزاده اقابش رو روی شاخی درخت گذاشت نیروکش رو روی چمن گذاشت و به سکهای گله هم دستور داد که بیهرکت باشن بعدشم مثل روزای قبل آستینای پیراهن و پاچه های شلوارش رو بالا زد و داخل آب شد و فریاد زد های اجدها ها. اگه نمیترسی خودت رو نشون بده تا یه بار دیگه با هم دیگه بجنگیم اجدهام جواب داد من منتظرت بودم و بعدش حساب خارج شد با اون جثه عظیم و حیبت ترسناکش در مقابل شاهزاده قرار گرفت اجدها با سرعت سرسام‌آوری به سمت ساحل هجوم می آورد و شاهزاده هم برای مبارزه با اون به طرفش رفت و یه بار دیگه اونها با همدیگه درگیر شدن. نبردشون تا نیمه های طول کشید. زمانی که خورشید درست بالای آسمون بود اژهها فریاد زنان گفت آهای شاهزاده، اجازه بده سرم رو یک بار به زیر آب ببرم اون وقت خواهی دید که با یه ضربه میتونم تو رو به هوا پرتاب کنم. اما شاهزاده جواب داد آهای اجده ها اینقدر به خودت مغرور نباش." اگه دختر امپراتور اینجا بود و پیشونی من می میبوسید، اون وقت میتونستم تو رو تا نزدیک ستاره ها پرتاب کنم. هنوز چوپان جملهش رو به پایان نبرده بود که شاهزاده خانم دوان دوان خودش رو به چوپان رسوند و پیشونی اون رو بوسید. وقت شاهزاده اجده رو بالای سر خودش چرخوند و تا عبرها پرتاب کرد. زمانی که اجده از اون ارتفاع زیاد دوباره به سمت زمین سقوط کرد، هزاران تیکه شده بود. از میون این پیکر تیکه تیکه شده یه گراز وحشی بیرون اومد. اما شاهزاده فوراً از سکهای گرلش درخواست کرد تا گراز وحشی رو دنبال کنند. سکهای گرده اون رو گرفتن و تیکه تیکش کردند. و از میون بدن تیکه تیکه شده یک گراز وحشی یه خرگوش بیرون پرید. و همون دهسه سگهای گله خرگوش رو هم گرفتند و کشتند از داخل لاشه خرگوش هم یک کبوتر بیرون پرید بلافاصله چوپان اقابش رو به دنبال کبوتر فرستاد اقاب به سمت آسمون اوج گرفت و بعد از شکار کردن کبوتر اون رو پیش چوپان آورد چوپان شکم کبوتر رو پاره کرد و همونطور که پیرزن قبلا بهش گفته بود گنجشک از درون شکم کبوتر بیرون کشیده شد. در حالی که شاهزاده گنجش رو تو دستاش گرفته بود با صدای بلند از اون پرسید حالا زود باش به من بگو که برادرای من کجا هستن. گنجش جواب داد اگه صدمه ای به من نزنی با کمال میگ میگم. پشت قصر پدرت یه آسیاب هست. توی اون آسیاب سه ترکه وجود داره. این ترکه ها رو قطع کن و ریش رو بکوب. اون وقت در آهنی یه سرداب باز میشه. توی اون سرداب آدمای زیادی از مردا و زنای پیر و جوان رو میبینی که تعدادشون به اندازه جمعیت یه کشوره. بین اونها میتونی برادرات رو پیدا کنی. نزدیکی های غروب بود. شاهزاده دست و صورتش رو توی آب دریاچه شست، عقابش رو روی شونش گذاشت و نیلو رو هم زیر بغلش زد. همراه سگای گله و گوسفندا به راه افتادند. دختر امپراتورم در حالی که از شدت ترس مثل بید می میلرزید، پشت سرشون حرکت کرد. وقتی اونها از خیابانای شهر عبور کردن، اهالی شهر حیرت زده بهشون نگاه می‌کردند. تا اینکه مقابل قصر امپراتور رسیدن. امپراتورم دور از چشم بقیه و مخفیانه سوار بر اسبش روی تپه ایستاده بود و از اونجا همه اتفاقات رو دیده بود. وقتی همه چیز با خوبی و خوشی پایان رسید و قدرت اجدها برای همیشه نابود شد، امپراتور به سرعت به سمت قصر اومده بود تا شاهزاده رو در آغوش بگیره و دخترش رو به عقد شاهزاده در بیاره. مراسم ازدواج شاهزاده و دختر امپراتور با شکوه خاصی برگزار شد و مردم شهر مدت یک هفته تو جشن سرور بودن. زمانی که مراسم جشن ازدواج تموم شد، شاهزاده امپراتور و اهالی شهر رو از هویت خودش با خبر کرد. همه مردمم هم خیلی شاد شدند. اون وقت مقدمات بازگشت شاهزاده و شاهزاده خانم فراهم شد. چون شاهزاده برای آزاد کردن برادرش لحظه شماری می کرد و باید هر چه زودتر به قلمرای خودش برمیگشت. وقتی شاهزاده به سرزمین خودش برگشت اولین کاری که کرد این بود که هرچه زودتر خودش رو به اون آسیاب برسونه جایی که طبق گفته اون گنجش سه ترکه وجود داشت شاهزاده ترکه ها رو قطع کرد و ریشه های اونها رو کوبید همون موقع در آهنی سرداب باز شد و از داخل اون جمعیت زیادی از مردا و زنا بیرون می اومدن شاهزاده به همه اون آدما نگاه میکرد تا اینکه از بین اونها برادرای خودش رو شناخت. اونها رو به آغوش کشید و تمام ماجراهایی که اتفاق افتاده بود رو براشون تعریف کرد. برادراش تا آخر عمر خودشون قدردان برادر کوچیکشون بودن و به خاطر اون شایستگی و شجاعتی که برادر کوچیک از خودش نشون داده بود، اون رو لایق پادشاهی میدونستان.